حکایت چندان که مرا شیخ عجل ابالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه ترک سما فرمودی و به خلوت و عذلت اشارت کردی، انفوان شبابم غالب آمدی و هوا و هوس قالب ناچار به خلاف رأی مربی قدمی برفتمی ناچار به خلاف رای مربی قدمی برفتمی و از سما و مجالست حزی برگرفتمی. و چون نصیحت شیخم یاد آمدی، گفتمی، قاضی با ما نشیند برفشاند دست را، محتسب گرمی خورد معذور دارد مست را، تا شبی، به مجمع قومی برسیدم که در میان مطربی دیدم گویی رگ جان می گسرد زخمه ناسازش، ناخوشتر از آوازی مرگ پدر آوازش. گاهی انگشت حریفان از او در گوش و گهی لب که خاموش نهاج و الاز. سبت الاغانی لطیبه ها و انت مغنین انسکت نتیب نبیند کسی در سماعت خشی مگر وقت رفتن که دم در کشی چون در آواز آمدن بربد سرای کت خدا را گفتم از بحر خدای زیبغم در گوش کن تا نشنوم یا درم بک تا بیرون روم فر جمله پاس خاطر یاران را موافقت کردم و شبی به چند مجاهده به روز آوردم. معزن بانگ بی هنگام برداشت، نمی که چند از شب گذشته است، درازی شب از مشگان من پرس که یک دم خواب در چشمم نگشته است. بامدادان به حکم تبرک دستاری از سر و دیناری از کمر بگشادم و پیش مغنی نهادم و در کنارش گرفتم و بسی شکر گفتم. یاران ارادت من در حق او خلاف عادت دیدند و بر خفت عقلم حمل کردند. یکی میان زبان تعروز دراز کرد و ملامت کردن و آغاز که این حرکت مناسب رای خردمندان نکردی. خرقه مشایخ به چنین مطربی دادن که در همه عمرش، درمی برکف نبود است و قرازهی در دف. مطربی دور از این خجست سرای، کس دو بارش ندیده در یک جای. راست چون بانگش از دهن برخواست، خلق را موی بر بدن برخواست. مرق ایوان زهول او بپرید. مغز ما برد و حلق خود بدرید، گفتم زبان تعروز آن است که کوتاه کنی که مرا کرامت این شخص زاخر شد، گفت مرا بر کیفیت آن واقف نگردانی تا منش هم تقرب کنم و بر مطایبتی که کردم استغفار گویم گفتم بلی، به علت که شیخ عجلنم بارها به ترک سماع فرموده است و موعظه بلیغ گفته و در سمع قبول من نیامد امشبم طالع میمون و بخت حمادون بدین بقع رهبری کرد تا به دست این توبه کردم که بقیت زندگانی گرد سما و مخالطت نگردم، آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین، گر نغمه کند ور نکند، دل بفریبد، بر پرده شاق و خراسان و هجازه است، از هنجری مطرب مکروه نزیبد.